جلسه شهر چالو اسم الله الرحمن الرحیم، الله حمل رب والسلام, والسلام به یک علم تفسیری تجامع و عدم از آیون شک ندر چرا شک میکنی الان جایی که هستید مسافت هست یا نیست علمجمان این شهر که الان شما هستید وطن شما هست یا نیست علمجمان ا تهرانی س شک بدوی در اصلش نه در متعلقش اصل حکم و اصل تحقیقش اصل ثبوتش اصل جعلش داریم فوتون شربش حرام, و حرام یا حرام نیست حرمت اومد از یا نه اینا حالا از این جهاتی نداره نظری گفتم که نظر مصادفاً همینه مشکورا همینه میگن منتهى منتهى تلایی تصدیق داره که قوام مجمالی به یک قضیه است. اما اما که این همین عدم تعین متعلقه متعلق فکیل تعین نداره هر نجسی واضح هست یا نیست نمیدونم این نجس شده یا نه. یا اون یکی نزیسه ببارده با این بجمالی میشه ب خاتر دو طرفه این دو تا طرف دار ن مینم نجاست تو ن افتاد یا ون ی مسافت هم همین ب مسافت مصافت ببن دوران بعضی از موارد متباینین بعضی از موارد عقبلاکثر دیگه در باب علمجمالی بعضی از موارد متباینین مثل دو تا بعضی از مواردهم اقبلاکثر م مسافت پس باز دو طرف و علم اجمالی که مطرح شد یعنی اساس مطلب اینه که علم اجمالی از افرز علم تفسیر تصویر از افریت به چیه تصویر از افریت به چیه این نحقی که داریم میگه برای اینکه مفید باشه اگه میشه از و مطالب کتاب بخونیم ولی <تصفيق> نیاز نیم برای که اشتاق تامی به مباحث علم مجمالی از یه ظاهی پیدا بشه وقتی مشهور خواهدم به اینکه مجمالی از افه تصویر از افیت چیه گفتیم تنها ملاکه از افیت تعلق علم اجمالی به عنوان نه به ذات به ذات تعلق <تصفيق> اون چیزی که در واقع مجمالی منجس میشه خصوص آنه. نه و مکلف خصوصا نزد و نزد فطر تو تا کاسه هیچ کدامش منجس نمیشه اون که منجز میشه عنوان احدوم احدوم ما نجسو نه اینکه این زرد نجسه احدوم ما نجسو علی از طرف خودش نه مشهور مبناشون اینه که علم اجمالی از عفه تصریح هم نشده تصریحش از بعضی از اصولی اینه. که محتفظی بودم که علم اجمالی در فلسفه هم داری منابای این دو باید فرداشته باشه پیجام ارتفادی نداشتن همون محتضا که من شده. علم اجمالی همه میدونن میگونن زعیف در حد میعضای قومی بیل بیل میدونن بعضی مثل علامه مجلسی مثل جهر میدونن در شکی در از افیتش نیست منطقه اختلافی که معاصرین و اصولیین معاصر دارن مثل ناینی نا و ناینی نا و آغازی عرابی و خراسانی و دیگران و اصفهانی اینه که مطلم ازمه چیه تمام بحث ها رو بردن روی دو نقطه یکی تصویر ما تعلق. یکی اینلیت و اختزام بعد یه ای هم سرما ما تمام نشده مید. بعد یه سمره ایم من این دوتا به ما ترمتر کرده هم با اون سمره چیه؟ جریان رسول در اطراف ایم جریان رسول در اطراف ایم مجمالی یا مانع زبودی داره یا نباده نداره مختزی داره یا نداره بعد در همه اطراف جاری میشه یا در بعضی از اطراف همه اینها رو در اون جزوه ایم مجمالی که قبلا گفتیم تکسی شد همه رو میبینید بر طرف مماری مشهور و شیصد نوشتیم 47 صفحه بود چند صفحه بود همه را انشاءالله این همه را بحث کردیم پس دو تا بحث مال مشهوره و منحومون مصنف و یک سمرهی هم برش مترفته میشه جرعان اصول در واقع سه تا بحثی ندارم. یکی بحث در مطلب علمش مالی یکی اینیت و افتدا یکی کم نسبت به متعلق این مجمالی سه نظریه مهم از ما است. اولین هست اولی نظریه نظریه آخانده مراسده قاعده به این متعلق این مجمالی فرد مردده احد و همای مردده به این رو مشکول ردش کردن با استناد به قاعده فلسفی با استناد به قاعده فلسفی ردش کردند. گفتن این المردده لا وجود له ولا ماهیت له نه وجود داره نه ماهیت نظریه آخند خوراسانی اینطوری مردود شده از نظر مشهور انتها یک دقیقی دقیقها در کلام آخوند خراسانی هست که مشهور ملتفد نشده و اونی که مردد عرفی رو میگه نه مردد عملی ده. آخند خراسان مردد عرفيی مردد عرفی داريم میگه یا ین خون است یا اون خون بگیم نه ذات داره نه ماهیت یا این پول مال منه یا اون پول مال منه یا اینجا باد بیاده بشم ییس جلوتر بیاد مردد نه ذات داره نه وجود حرفا چي ی فلاسفه میزن عرف میგه مرتد داريم منتها اون چیزی که در فلسفه مطرحه اون نیاز به یک العاده ای داره مردد چطور نمیتونه نماهیت داشته باشه نووجود اون یه تصویر دیگهی میخواد که در کلمات اصولیین باستان نداره اصولیین میگن مردد نزاد داره این و برخلاف ارتکازا پرد ار پرد امور متردده و مردده دارند از <تصفيق> و وقوع یک شیعی در نظر عرفی بزرگترین دلیل دلیخ و قبیتتر بر امکانش رو موجودش از پرد مردت رو داریم حالا فلاسیخ نفتیش میکنن اون یه توجیه داره توجیه کاملا علمی که در محل خودش این در اصفار. بله داشتن که به جاری مشهور نمیگن اون فقط در لامه هرچند خیلی معنی داره مشهور نیست نیاز ساده است که ما حکم نمیشیم ما حکم هر طور کلیه نیازی نیست به تفصیل در اینا وارد هر به اعتباری هم نه خوب نیست لذا آخونده خلاسانه به فرد مردده مشهور لفظش کردن ردش کردن گفتن نظر داره نه وجود فرسفه هست که میگه نداره عرف میگه هر غرف فرد مردد رو داره نظریه دوم نظریه آغازی هر آقایی این ستا نظریه را آقایی حفظ کنن یعنی حفظ نظریات خودش خیلی مهمه و قاعدش هم معلوم باشه پس فردمار از درد مال آخونده نظری یه عراقی که علمش مالی تعلق میگیره به موقع، به واقع واقع به اون نجیس واقعی اون باطل واقعی به اون مصافت واقعیه به حیز واقعی به جنابت واقعیه به ادالت واقعیه اینم نظر آغازی عراقی به واقع فرمونیه واقعی که ما الان به کدوم؟ علم تفسیری علم اجمالی با علم تفسیری در نظر آقازی ها در معلومش هیچ فرمونه هم واقع معلومینم واقع در علم که فرمونه آره اون آینه صافی نه آینه, آینه خراش. استرابه آه. این هم از استراواته، ولی حالا اینطوری قائلا نگه نظریه سوم نظریه نائینیه قوی نظریه در محل بس نظریه نائینیه و اصفهانی و مرموی خوی این سه نفر قائلا به این نظریه سوم یعنی تعلق علم اجمالی به جامع نه به واقع و نه به فرد مردد این بهترین نظریه است از این سه که فعلا سائله و این نظریه ناینی نا قابل تقریب و توجیه و استدلالده اینو میشه توجیح کرد اینو میشه استدلال کرد و تقریبش کرد و شبیه همین نظریه که گفتیم یعنی تعلق علم به انوان تقریبا شبیه همین تعلق علم به جامعه این چارمی نظریه مثل همی سه نظریه شبیه همان منتها فرقی که داریم که ناینی اینو پیش نبرده و نظریه ناینی عقیب مونده سمره برش مترتب نشد این نظریه کاملا علمی مطرف شده سمره برش مترتب نشده اینکه میشه برش سمره مترتب تعلق علم اجمالی به جامعه بهتر است از اون دو نظریه میشد پیش بره ولی حالا نرمید ازاین همی نظریه اقینیه برای اینکه سمرات عملیه در مقام استنبالت بر اشتیاری بشه ما قول چهارون مطرح کردیم تعلق علم اجمالی به اینوان در مقابل ذات یعنی در بابید مجمالی عنوان منجز میشه نزاد و این سمراتی داره سمراتش مخان بگیم تکمیل این ممنوست و ادامه همین ممنوستات میشه و برگرفته از همین نظریه است یعنی نظریه عنوان تکامل یافته نظریه جامعه هست بذار نوحن میگن ناینی و فیتره این هم یکی از نظریهات اشتباز به غرف نزدیکتره اما که باز قایل به اختزام میشه اونم باز بهتر از قول به ایلتییته این ها را تحقیق دیگه چون مبنا میخواد یه طوری بخونید که مبانی خودتون محسوس، مشهود معلوم باشه کدومش انتخاب میکنید هر از اینها تحقیق میخواد چه فرد مرددش، چه واقعش، چه جامعش و چه انوانش شاید یه نظریه پیدا کنید، نظریه خامسی باشه. که من ان شاءالله اونم می دید ما مستحاله می‌خوام ولی تا نباشه چهار تا نظریه یکی شو باید بگم خلاص تعملیه این قول به عنوان مرتبط میشه به علاوه اون سه قول مرتبط نمیشه و نظریه و تقریبش به ذهن یه فرقی رو از ارمو نمشتم زخیه 189 سید در اوه یه مطلبی آورده و این شاهد بر همی مطلب و تفسیری که ما داریم میگیم این طور که علمش منجز باشه به منجزی یه و همیشه موجب احتیاط باشه خودشون واقعی نیستن و همین اختلاف کاشف از یک نکته ای که سرفی داره که این اختلاف داره و سرفش همونه سید در عروه داره که در مبحث اقصال عروه اسمت قصد قصد جنابت فرموده فل جنابت دائرت بین شخصی لا یجبال قصد علا واحد و زبن و کشک در این موارد فهمدیش کدام بسنم با اینکه که علم اجمالی دادیم به حدوث سبب جنابن مردالی بر هیچ کدام گست واجب نیست در توجیه این نظریه مرحوم آی حکیم جلد از مستمسک خیلی ه فرموده به اند وجه حرففیه نه عمل کل واحد منهما استصاب به تحارت نفسه اکنون تارت رو نسبت به خود اشاری می کنه و یم نه ان علم اجمالی یا نمیشه علم اجمالی معنی میشه نیست یعنی اون از جیت نرده دیگه بالو پنجم ایلمجملی داری معذوری معنی نمیشه چرا معنی نمیشه به خروج عهد رفته ایه از محل دلگتیم به خاطر اینکه دو تا شخصه جنابت زید ارتباطی به آن نداره جنابت آب ارتباطی به زید نداره پس یه دیگری از محل افتدای این و تکلیف به قصد برای این شخص خارج و به تحت به محل ای که مثل این موارد یعنی خروج از محل افتدا مانه از منصدیت این مگر دیگه یه طوری وارد محل افتدا بشه یعنی شخص دوم هم یه وارد محل افتدا بشه مثل اینکه عجیر باشه برای کنس مسجد مسجد جالو جامعه کنه باز مرد اطلاع شد در این موارد از مرد اطلاع خارج نیست ولی اون فرض اول از مرد اطلاع خارج این مسئله یکی از فروعاتیه که در اول اومده در اعلامه با داره که ان نهو ازاده تل بین شخصین یعنی علم اجمالی لا جزء احد ما ال اقتداء به الاخر یکی از اینها به دیگری نمیتونه اکتفا کنه للعلم الاجمالي بجنابت اله او جنابت امام اله علم اجمالی داره علم اجمال هم. علم میواری منجزه تکلیفه بنابراین شخص نمیتونه دیگری هیچ کدام به دیگری فشار کنه ولی اگر این جنابت داره سه نفر باشه یکیشون به دیگری یا دوتاشون به دیگری میتونه اختبار یه مسئله که در عروه تسکیه شده در همین قسمت از اخصار که شاهد برمونتزیت علمش است منطقه در کلمات قبل از اینها علامه در اکثر کتبش تجویز کرده اختدار رو وارث ترین که میشه اختیار کرد وقتی جزوزه ال علامه به تذکره و نهایه و تحریر و المنطا گفته اختیارش رو نندید یه اختلاف تر از این ما میایم در اصول بخونیم آقای المجمال مونثز تکلیف بعد یه مثال بزنم بخونیم بره در رسائل و اعیان امامیه مخالف علامه در اکثر کتبش قائل به جواز خداست یعنی اون چیزایی که الان میدونن اینشون نمیدونسته و طبعه او علازاله سید و مدارک صاحب مدارک هم قائل به جواز خداست و صاحب الهدائه اونم قائل به همین و مرحوم نراغی در ادامه اونم قائل به جواز خداست بلد خود صاحب جواهر پس چرا در اصول به ما به خورد ما میدن که اختلا جایز نیست چون علم اجمالی داریم این علم اجمالی عیوش چیه یعنی یا ساعت جواهر نمیدونه یا ما نمیدونیم علم اجمالی یک از این دوتاست دیگه یا اینا واقعا نمیدونن صاحب مدارک نمیدونه ساعت جواهر نمیدونه نراغی نمیدونه علامه نمیدونه اینها نمیدونن یا ما نمیدونه یه سری هست اون سرش چیه سرش هم اونوان مهان من و شیخ انصاری شیش تا ها آورده بر امثال مقام و فرموده من هی انتخاب نمیدونه و جزمه بهشم ندارم پس اون چیزی که ما در اصول الان داریم میخونیم منجزیت علم اجمالی نسبت به طرفین، به نحر احتیاط تام و شدیدن در مقابل میرزای بوم بیمیستیم بی اساسه بی انصافیه یعنی درست بی انصافی میخونه علاقه در اکثر کتبش رفت افتدا کنن چه اشکاری دارن بگم بابا علم اجمالی دارم به اینکه یک جنابتی در بین هست چطور افتدا کنن النامه میگه نداره؟ صاحب مدارک میگه نداره؟ نراقی میگه نداره؟ صاحب هدایق میگه نداره؟ جواهر میگه نداره؟ ما میگیم اشکاد نداره چیه؟ و حق ما سیده سیست با همیناست که هم میگن افتدای اشکاد نداره؟ پس مسلم نیست اینکه علم اجمالی منجز تکلیف باشه به نحو احتیاط تام که آقا اجتناب کنید به خاطر این که علم اجمالی دارید به نجاست احد ما هر دو رو کنار علم اجمالی دارید به جنابت احد ما هیچ کدام واسه نکنن ولی به هم دیگهم اقتدا نکنن اینها به خاطر چیه یعنی اصل اختلاف کاشق از یک نکته ایه. که یه گیری هست که اون گیرش در کتاب رسول در نیمونه ما بسیشون نمی یعنی معلوم نیست چرا این اختلاف داره یعنی اختلاف در این هست که ساعت جواهر من متن صاحب جواهر من آوردم البته از مستمسنگ دارم میارم میگه من جواهر ندارم چلت سرگون صحبه 29 مستمسک من عادت به دکتر رفتن ندارم مرا سرمخور بگیر قایله بینید که طبیعی باید خوب بشم. طول می نه بورسای های استراغ میاره مثلا می دکتر بورس میده استراغ میاره استرس میاره گرچه دیگی این ها گرچه, گرچه بعضی از موارد می نمیشتن گرچه سفیر بعضی موارد نمی نمیشتن دارو خونه بعد پس این قسمت مستمسک رو که مزلوش من تماما اینجا آوردن خوب مبارس این ما اینو می بگیم مشهور میگم در رسول علم اجمالی من از به نحوه احتیاط تان. فروعاتی داریم که عمل نکردن بهش داریم که در مقابل این نظرگیست دادن از جواهر گرفته تا علام اینا نیستند. نیستن این سرش چیه؟ سفر کلی تفسید بین انوان و مانون کلیش اینه. یعنی علم مجموعه منسز انوانه نه منسز حالا برای توضیح بیشترش دو سه تا نفتر آقایم به ما علیت افتضار مطرح نمیمونیم اونها نظریه علیت این سببیت داره میگم نه در مقابل اختزار. نظریه علیت افتضار اون مطرح نگرده الان مطرح نمیشه تو جزه اومده همه چیزشون نویشتیم دوره قبل منطقه مفید نیست الان مفیدتر از اون مفید. آره یعنی سببیت ادلیت ادلیت نسبت به احتیاط یعنی سببیت که عظم از ادلیت را شده است این فرد فرد چیه ما روی دو تون مثال اینو من توضیح بدم احدهما هما احدهما اهده هما دو تا مثال احدهما نجس احدهما هما حتما بنویسید و تمام خلاف این اعلام با اینا همینه یعنی دو همین دو تا مثاله ولو در کلماتشون مثال نیمده اینا با هم دارن دعوا میکنن ولی به خاطر یه نکته ای که اون نکته برای هیچ کدام از طرف معلوم نیست مثل این فتح و هماس با هم درگیر بودن یه زمان معلوم نبود برای چی؟ اینا هم درگیرند ولی معلوم نیست برای چیه چرا درگیرن چرا علامه با اینها درگیره سرش برای هیچ کدام از دو طرف معلوم نیست ولی در زمین دو دوتا مثال معلوم اهده احد نجس احدهما اهده نجاست با علم برای اهده ثابت میشه ولی جنابت ثابت نمیشه فرقی واضحتر تر از اگر شما علم اجمالی پیدا کنیم به نجاست اهده نجاست اهده ثابت میشه ولی اگر این مجمالی پیدا کنید به جنابت عهده ما جنابت عهده ما هم ثابت نمیشید شاید تالا نشینده بودید شاید تالا نشیده بودید و لسهش همون مطلبیه که آقای حکیم هم آورده اون خاطر میگم که کتاب خیلی خوبیه و زهبت کشیدین رو از کتابهای دیگه آورده در ضمن ندلی که ذکر میکنه در جلد سوم صفحه 28 و 191 جزوه خودمون مرحوم آقای حکیم قائل این چه مقصد پختنی ولا و انا نمنع حدوث الحدث و حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص به یعنی علم اجمالی جنابت اثبات نمیکنه، علم تفسیری نمی این که ما بیایم بگیم مقای علم اجمالی داریم پس ثابت نه بین نجاست و جنابت خواهد به فرق وقت ما این فرق اینجا نخونیم که این میخواییم بخونیم شما تمام دوره های محاضرات فقه بخونید تو هیچ کدامش نیست آقای حکیم داره از آقای حکیم هم کسی نگرفته اینو توضیحش بدن و قبل از ایشون آخونده پراسانی در هاشیه رسائل در, در هاشیه رسائل در هاشیه فوائد که اولین کتاب ایشونه در جونی نوشته و خیلی خیلی مرحوم آغازی عراقی میگه در مقایسه کفایه با این دررال فواید درالال رو تو 25 سالگی نمشد کفایه رو زمان مرجعیتش نمشد آغازی عراقی در ما خود آخوند دیدیم و میدونیم با ثباته چون شاگرد آخوندن و آخوند در سوادش این شک و شبه نیست و در ادام آغاضیا فرمود اگر کفایه دلیل بر بی بیسوادیش نباشه دلیل بر سوادش و کتابی که دلیل بر سواد آخنده دلن یعنی اون چیزی که در ابتدای عمرش نمیشه. الان ما قفلت میکنیم میگیم آقا پیر بشین بیایم درس خارج بخونیم بگیم اشتباه هم. یعنی الان تو این سن هر هرچه به ذهن شما برسه اون خیلی بهتر از اون که چیزی که ده سال بعد میخاد در دورر سطحی پنجه و پنج پاشه رسائل فرموده چرا علام اومده باید شده به صحت اقتدا علامه که کم آدم نیست باید به صحت اقتدا شد پس این جنابت به چی میشه چطور از کنم یعنی علامه نمیدونه این داریم میدونه ولی اونقدر اشتافه به فقد داره میدونه که این اقتدا باید باشه ولی سرش چیه؟ سرش هنوز نمیدونن. کمان که دیگران هم نمیدونن که بعدا معلوم میشه سرش چیه سرش تفصیل بین انوان و مانون علم اجمالی انوان رو ثابت میکنه نه مانون ذات رو مانون و ذات یعنی چه؟ این من یه داخل پرانتز رو از این حرف درم رو بگم داخل پرانتز آقایین بنویسم چی نوبت به ذاته شخصی که جنوب میشه نه عنوان جنوبت متقوم به ذاته نجاست متقوم به عنوانه کلو شیعن لکن نزید شیعن یکی از اشیاه عنوانه عنوان میتونه نجس باشه ولی عنوان نمیتونه جنوب باشه ما بیایم بگم دیوار نجیس جنوب نه دیوار نجس میشه و جناب نمیشه جنابت متبورنه به ذات نه به انوان عنوان نمیتونه جنوب باشه ولی نجاست مال عنوان هم هست کلوشگ نظیف حتی تعرف انهو قذر این داخل پرانتز که میخوام بگم با علم اجمالی انوان ثابت میشه ولی ذات ثابت نمیشه چرا علم اجمالی نجاست رو ثابت میکنه و جنابت رو ثابت نمیکنه؟ به خاطر که جنابت متقبیم به ذات نه به انوان در موارد اجمالی ما چی بلدیم ما انوان بلدیم ما ذاتی نمیدونیم و اینا خیلی مهمه اگر کسی ده سال وقت بذاره همین نظریه رو پرورش بده اهل فضل هیچ نظریه رو دو خالش همین یه نظریه بین نجاست و جنابت قائل به فرقم از نظر فتوایی نگان از نظر اصولی در مقام افتا صاحب مدارک قائل به عدم جواز شده یعنی جنابت رو نادیده گرفته با این که قولش منسزیت علمش مانیه. و همچنین صاحب هدایر و صاحب جواهر این ساعت جواهر باردشه حالا باز قبل از این دورر بخونم ساعت جواهر داره که بله مخالفت قطعیه با چیه نه دیگه اونا یه چیزای مقالفه حساب میشه دیگر وقتی ما این مبانی رو داریم میخونیم اون مقالفه میشه کدوم مخالفت چیزی ثابت نیست آقا اگه علم تفسیلی به جنابت پیدا کردی نسبت به شخص و نوبه بله، الا اهد و احد همه نیست جنابت ثابت نمیشه این نظریه بکریه این بالاتر از مخالفت ها نمیدونم محافظت التضامی مخالفت التضامی علیت اختزا تعارض جرایان اصول اونا چیه؟ اونا در اصول در صحیح فقه ما چیز دیگه داره میگه علامه در اکثر کتب فتوایه به جواز اختیار داده یعنی چی یعنی جنابت ثابت نیست در مدارک همین قاعده، حساب، درآمد همین توضیح داده، ساخت جواهر همین قاعده شده، نراقی همین قاعده شده. الان دو این بود. این کوبراس کوبرا رو ببینم دیگه میفهمید می که میفهمید که علاوه این که حکم به دانش راست باشه علم اجماعی در حث انوانش برای ما منعجز میکنه. برای همین احد مثلا انائه یا مثلا مواردی اون انوار برای ما منع نه الان دومید و یه مقدار با استراق شما درک کردید نه اون کوبرا بود که علم اجماعی ما منجز انوانه و انوان مسبابش چیه مسبابش نجاست نجابت جنابت, جنابت زاده. <متحدث> یعنی وقت آره این صبراس. آره من اولین اعده گفت اینا سر راه ندارن. نه نه نه دل اونم. اونها بحث دیروزی کبرا بوده، بحث امروزی صبراس. یعنی چطور تشخیص بدیم؟ علم اجماعی منجز عنوانه. عنوان یعنی چی؟ یعنی نجاست. ذات یعنی چی؟ یعنی جنابت. جنابت رو ثابت نمیکنه؟ نه. داریم کسی قاعد شده باشه الا مرشان تا ساعت جواهی قاعد ساعت جواهی کمی نیست قاعد شده به جنابت ثابت نیست دیگه فقیل جنابت ثابت میشه این که چون هست در کلمه چیه درست شده؟ خوده ما داریم بگیم اونا ندفتن اونا خودشون میگن از مقاط علم اجمالیه اصلا بحثشون و مثب به علم اجمالیه با اینکه که علم اجمالیه قائل به یزدی قاعده به منجزیت اجمالی هست در مقام افتا علامه نیست صاحب هدائه نیست صاحب جواهر نیست صاحب لوامه نیست و دیگران نیستن اختلافی هست خود اختلاف یه نکته ایه این طوری چما بیم به ترسیم بقا. چرا نگیم عهده همه جانبه نه نیست جانب نیستن. شاهدش چیه شاهدش عدم وجود به بر هر دو خود سید در مسئله سه قائل شده بگیم لا یجب قصد الا واحد منهما همه قصد چه جنابتیه که قصد نمیخواد یه مقدار تطویر ذهنی می‌خواد. استیحاش نباشه آهان قبول کنن این حرفی که من دارم میگم یعنی حرف بی ربطی نیست و یکی از طلب هایی کرده بود یکی از اصاقی گفته بودن که این حرف های بی ربطه بی ربط نیست خود اون استاد بی ربطه که نمیگونه اون طلبه می جانیسای ما خیال کنید در نظرشون ایشون تخیه شد استادش نه اون طلبه بیرونه بعد خود اون استاد کی بوده استادی که امثله نمیتوند تدریس کنه یعنی بیره نه با خودشون دارن خود اینا دارن من شده و اما ما فیل حکیم داره میاره من, اق من ان اقصا ما من الادله اشتراتهو في الاعتمام هو عدم و علم معموم به فساد سلات الامام و وجود واقعا للامام لا يمنع من جواز الاعتمام بهی تا آخر نهایت چیزی از این نمی بعد آخوند خراسانی در دورت مطلبی بالا از این داره که چرا ابلام نو بایده به جواز اختیار شده پس این جنابت فلوین چی میشه فرموده اِنَّمَسْأَلَتَ حکم بعض یعنی ابلامه به سه حده اعتمام یوم جنن یکون نظرهو الى منع مانعیت الهدس الستلات مالم یو علم حدوث هوم شخص معیمه بعدم نگو این حرف باطلیه خب ما وقتی های شعر از خوب بفهمیم خیلی در میشه ما نه سایل نمیخونیم وقت میگن آبا این پول میده می ما تازه ده درصدش رو بگیم نوست درصدش باز میمونه چون فرصت نیست طلب ها میترسن خیلی طول بده اینها رو خود داره میگه که جنابت وقتی که از شخص معینی باشه تعین شرطه آقای حکیم میگه ظاهر نصوص همینه که باید از شخص معین باشه تعدد ما تعین نداره ذات نیست عنوان اینو بخونم بعد او من اشرطیه ذهب به امام به صحت تا آخرش پس اخوندم در بخزه در صرف پنده و پنج داره و مطالب دیگه که اومده و ذکر کردیم جنابت اهده هما ثابت نمیشه چون انوانیه ملخص کلامی در این جلسه چون انوانی نیست بلکه مستند به ذات طرفینه و وچ نیر وضعی ذات و فرد با علم تفسیر مناسب میشه. هم الوان. و هم محل اختلاف دیگه آن یکی از مسائل همین جزء امروز نمی‌ذارم. مثلا گفتن همین اشخاص وارد مسجد میتونن بشن قرائت از آن نمیتونن بکنن بحث این رو صغرمیه اقتدا در نظر بعضیا، ها در در نظر بعضیا ها ذاتیه بحث صغرمی است، اونا باشه شما صغرمی میشه ما الان فرض بر اینه که تمام اقتدا ذاتیه مثلا مرد بله مستو الا ببین شما علم اجمال این مجمل پیدا به ببین که عهد و جنوبه جنابت ثابت میشه در بین حالا شما همان بر جنبت دیگه مرتبط بر جنابت جنابت هم ثابت هست یا ثابت نیست نه اصلش اصل, اصل جنابت ثابتی یا ثابت نیست مشکورم میگن ثابته بعد در احکامش تفتیق قائل میشن که محل اختلاف میشه ولی ما میگیم نه احد و همازیان هم چنابست میشه. معیدش معیلش علامه مدارک هدائق جواهر و بهتر از همه نظریات خودمون بهتر از همه زنده چه دنبال مرده ها باشیم زنده و حی. عنوانیه. جنابت عهده و ثابت نمیشه در وقت هم یه مثال باز آخر مراجعه کنم بزنید در این کتاب ها بیاد وقت متعلق به ذات رقب است به به ملیکه عنوان اصلا درش مطرح نیست لذا فتاوایی که قائل شده به اینکه در موارد وقف، یه دیبیان مثلا اونجا نماز بخونن یا کاری بکنن تا صدق لازم نیست شما مال ذاتشه برای چیه نفر گرد نماز بخونه تا بگیم وقت شد مال ذات هم با سیغه و قصد و اینشاهه سه گرفی نمیخوان چیکار به عرف داریم شما بناس فتوا بدید شما که میخواید فتوا بدید در باب وقت لازم شخصی یه بار اینجا نماز بخونه تا بگیم مسجد شد یا لازم نیست طبق این مبانی که وقت به رقب و ذات تعلق می گیرنه. ولی طبق هایی که میگن نه به انوانه لازمه بعد هاش مشهور قایل به تعلقش به انوان میشدن شدن اون حرف رو می به تعلقش به ذات هم و ازاره می گنن نماز بخونه تا صرف بکنه مشکل ما اینه یعنی اشتلاف فتاوا با مبانی ما یک سال هم اینها رو توضیح بدیم باز کمه خسته نشم مزید طلبه ها بگن آقا تی طوله و طول میدن و چیه نه یک سال ما رو این بحث کنیم باز تمام نمیشه ما میخواه اشتاقه به فقمون پیدا کن اشتاق پیدا کنه طلبه که فردا گفتن عهد و همازیونو وکمه به جنابت شما شما یا نه جنابت عهده ثابت نیست و ما یترد تبا علیه ها در در آره فرصت گشتن ندارم من وقت چیز ندارم تسلط به چیزم ندارم به این اینتلت این مشکل من دوتاست بله یه به سال دیگه بله؟ نجاست بالعنابی قرب شیعه شیعه کش اونوانه به ذات نیست. و ترشید که در باب به تحالت نجاست هست حالت نجاست بناش بر تسهیل. یعنی شارع همیشه حکم به طهارت میکنه تا به نجاست. این علمانیه یه مثال دوم. باز باز برا خب بله. با. تعرف تعرف میتونه علم تفسیری باشه بینه میتونه علم مجموعی به علمانش باشه نجاست عهده ما ثابته ولی جنابت عهد ما ما خلاصه بحثمون ادعای من اینه کاری به هیچ حرف دیگم ندارم ادعای اینه نجاست عهده ثابت میشه جنابت عهده ما ثابت نمیشه خیلی سریع و رک حرف من اینه معیداتش هم یه مثال دوم باز برای تحصیل تون. ادالت دوست. امام جماعت انوانیه طبق نظر مشهور ادالت مجل تقلید ذاتیه لذا برای اقتداء به امام جماعت کشف ظاهرش کافیه یعنی ظاهرم خیلی خوبه ظاهر سلامه ولی در مرجع تقلید باید احراز بشه ادالت ماغیه چون ذاتیه متقبله به ذاتشه نه به عنوانش و اینا فرهایی در لساله هست در قربه هست و نیاز به بحث و تحقیق داره منم تمام به تلاشم دیگه این زمایا معلوم بشه برای طلبه هم کبراش هم صغراش هم او آتش خودتون میگی زحمت زعمت بگیجید که و ان انسان، الانسان ما ماصب و ان سعیه سوف ادامش خیلی مونده یعنی تلاش بکنه سوف را. تلاش نکنید میمونید از الان هم مبناتون هم فتواتون باید معلوم باشه و ایتا به خسالت داره میره ناریش کرد ها و